روزگاری شد که در میخانه خدمت میکنم در لباس فر کار اهل دولت میکنم تا که اندر دام وصلارم تذربی خوشخورام در کمینم و انتظار وقت فرصت میکنم واعز ما بوی حق نشنی بشنو که سخن در حضورش نیز میگویم نقیبت میکنم با سبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست و از رفیقان ره استمداد هممت میکنم خاک کویت زحمت ما بر نتابد بیش از این ها کردی بطا تخفیف زحمت میکنم هاک کویت زحمت ما بر نتابد بیش از این لطف ها کردی تا تخفیف زحمت می کنم زلف دلبر دام راه و قمزش تیر بلاست یاد دار ای دل که چندینت نصیحت می کنم دیده بدبین بپوشان ای کریم ای پوش زین دلیری ها که من در کنج خلوت می کنم حافظم در مجلسی دردیکشم در محفلی بنگرین شوخی که چون با خلق صنعت می کنم